خب عشبت که دوستان لطف کردم معرفی کردم من گفتم گفتن اون پرنده چیه؟ این پرنده اگر از من بپرسن من میگم کوچکترین دایناسور یکی از کچکترین دایناسورهای تاریخه اما کار من چه من دیرنشان هستم یعنی که میرم دنبال فوسیل و سنگاره میگردم و به داینوسورها علا بدارم اصلاع دایی بعدی رو اگر دوستان دستم من بله اینا نقاشی هستش که من وقتی نوجوان بودم یعنی حدود سال 98 تا 2001 من اینا رو می کشیدم اینا بیشتر از همین دارین سوال های فرداری هستن که فرنده های امریزی این سوال هامو متصل می‌کنید ببخشید من دارم بشکن می‌زنم این علتش این هستش که من تدریس برام زیاده و بعضی از اینها رو می‌خوام که فقط چند ثانییه به شما نشون بدم که بررسی می‌سید بگی مثلا این یه دارین سوالش که اون زمانی که من اینو کشیدمش تصور من این بود که این یه داییناسور شفاچی دو پا اما من موقع فکر میکردم که بعد چهار پا باشه و اتفاقا الان به همین نتیجه رسیدیم که واقعا چهار پا است. از سال 1380 من وارد مجله دانشمند شدم و در کنار علاقم که به نقاشی کردن داییناسورها داشتم و کردن از کردن در مطالعه کردن شوشو کردم داشتم نوشتم مثلا این مقاله‌ای که اینا نمی‌دید در مجله دانشمن نوشتم و البته همو مقام متوجه شده بودم که برای که من بتونم خوب راجع به دایناسورها صحبت, صحبت کنم و بنویسم نیاز دارم به اینکه از هنر استفاده کنم. حافظ از عزیز خیلی خوب اشاره کرد که هنر میتونه در ترویج موثر باشه، سیما رو مثال زد و دراوموز صحبت من امروز در مورد اهمیت نقاشی در دیرینشناسی. می‌وید که من برای مقاله های خودم در مجله دانشمن همون وقتم که ردا و من با باید با هم میادات خودم طراحی می‌کردم از موضوعاتی که دارم صحبت می‌کنم و البته در کنار میوام یکی یاد هست نه یادم من همون واسه منم پروژه داشتم آگه میشه برگرده استیج رفت در کنار کاری که متن مجرات می‌کردم خب کار تیمیش دیوار نشستم انجام می‌دادم و در پیجونیهای دایناسورها که در ایران انجام شده در سال 1381 و پروه های بعد از اون که وجود داشت در نخستین استقان های داینورها ها در ایران رو ما تونستیم کشف بکنیم و یه کارهایی کردیم چند تا کار پیدا کردیم و در حال از هم دارم روی سنگارره های داینورها و همین کردنن و چند روز از کار میکنن. البته روز به نگاری علم بالا از درباره دینشناسی رو هم ادامه دادم مثلا چند پیشگه خاطرتون باشه شاععه همه جا شده بود و به گوش می رسید که لاشه داینوسوری دا در یکی از شهرهای ایران پیدا شده این محتاج بود که من در مجال دانستانی ها نبشم و توضیح دادم که این لاشه داینوسور دا در واقع یک سگ که اتفاق خاصی برایش افتاده و در حقیقت چیز عجیب و غریب و غیر طبیعی نیستش همینطور در که که ما در ایران چه داینوسورهایی دا پیدا کردیم و الان در حقیقت کجا هستیم؟ اینا چه متدی در ماده دانسانی اون بوکازینی که تاثیرش دیدید اون بالا کار میکنه البته نقاشی راهنمایی میدادم مثلا اینا بعد نقاشی هستش که من در آزمایشگاهی که کار میکنم از همین نمونهایی که باهشون سر کار دارم مثل خرچنگ و کشتی و طوطی ها و عقرب و هر از اون اینا میکشم و ساختن که مورد جنجیتاره داره مثلا می دونید که یکی از مراحل پیشرفت کردن در کار هنری تغریده این تصویر سبلبخش این نباید میرفتش همینش بعه تصویر سمت شب که می دید کار پال وارتیس خیلی معروف پال وارتیس کسی میگن که درباره موضوعات منحرض شده نقاشی میکنه تصویر سمت شب تا آقای جان سیویق تصویر سمزراست دعواد کپی من از کارشونه. آشنای من با آقای جان سیویق بله تصویر بعدو لوتکنو برد به این کتاب که من وقتی 14 15 ساله بودم مطالعه می‌کردم گاهی وقت من تا ساعت چهار پند صبح همجوری بیدار بودم و به تصاویر این کتاب توی اسلاده برد محبت بکنید به اسلاده برد تصابیر این کتاب برخلاف اغلب کتاب های دیگری که من در اون سن سال دوری دان این دستم می‌رسید چند تا ویژگی داشت که فکر می کنم هنوز هم هنوزه. از نظر ایمیجی ها منحصر به فرد باشه یکی از نظر کیفیت نقاشی هایی که همین آقای جان سیریک برای این کتاب انجام داده از نظر از نظر ساخت و ساز و بافت و رنگ و جوشیز خاص که نقوش ها که چشمشون بیشتر عادت کرده به خوبی میتونن تشخیص بدن و همینطور درباره این اطلاعات علمی که کنارش وجود داشته یعنی مثلا تصویر اسکلتون داره اینطوری کشیده های دست کشیده، در دپاشه کشیده اینکه این سفن‌های دست‌کافی کشیده، ردپاش کشیده، می‌گن اینا اینا در کدام منطقه از زمین زندگی می‌کردن و سنگ‌وراش این کجا پیدا شده؟ بعدا فهمیدم که اسلاید در این تصویر بزرگتری از همون نقاشی‌های محبوب آقای جان سیبی که من فکر می‌کنم با وجود که اینها از نظر علمی امروز نیاز خیلی شدیدی داریم به اینکه آپدیت بشن اما همین‌ها از نظر, نظر هنری به نظر من در بارتنی سطح پالوآت قرار داره. و فهمیدم که این کتاب در حقیقت خلاصه ای از یک کتاب کامل به نام The Illustrated insight سال 1990 منتشر شده انتشارت پنگوان این کتاب منتشر کرده بود و توی اسلابی بعد بله این تصویری که میبینید در حقیقت یک قسمتی از همون کتاب ادارت و معارف مصور ایدانیسورهای انتشارات پنگوانه که نغوشه اگه سی بکون ببینیم در اطلاعات علمی که در و کنارش وجود داره و تو صفحه بعد هم روزمره ما میتونیم ببینیم در ببینید این این کتابی هستش که اصلا کتاب تخصصی محصول نمیشه کتابی هستش که به قانون معروف کتاب پاپ ساینس یعنی کتابی هستش که علمیه و برایی مخاطب عام نوشته شده اما کل از جزیاتی هستش که مخاطب عام ممکنه در نگاه اول به نظرش قریب بیاد اما کاملا قابل فهمه و آن همشه میکنم که چقدر خوب میشه من اگر فرصتی داشته باشم تا بتونم چنین کتابی بنوسم. خب. این بعضی از صفحات این کتاب رو من انتخاب کردم که در این وقت نمونه های از تصویر خود فوسیل ها رو نشون میده توی تصویر بعد اینجا ده کتاب من ازش که سال 1390 اگه اشتباه نکنم منتشر شد و من نه از مطالبش بلکه از اولیگوی هنری که توی این کتاب تصویر شده توسط آقای جان ویک وجود داشت الهام گرفتم و سعی کردم که کتاب من هم همچین بیژیگی داشته باشه ببینید که اگه امکان داره تصویر قبل رو کنید یه تصویری از داین اصول های زندگیه که محلوطه اون فصل میشه یه درخت فرگشتی رو در سمت شب ملاحظه میکنید و تصاویری از جمجمه و استخانبندیه نوعات خاصی از بدن دانیمسورها رو من امادم بزرگ کنم و در مورد اینها صحبت کردم مخاطب کتاب نوجوانها ها هستن ما را تصور میکنیم که وقتی سورا مخاطب عام میبین باید همه چیز را ساده کنیم و جزئیات را بکنیم من فکر میکنم که یکی از ابزارهایی که میتونی به ما کمک بکنه تا پیشیده موضوعات علمی رو هم با مخاطب آم بذاریم، هنر هست و. در دیر نشناسی پالاوارتیس ها به خوبی تونستن این کار را انجام بدن این نمونه از کارهای آقای محمد هموانی از تصاویری که برای همین کتاب به صورت ارژینال تهیه شده یعنی این تصاویر صحبتاً برای این کتاب تهیه شده و تنبعی از دایناسور های خیشاوندان دور و نزدیک تیرانوسورس رو نشون میده همون تصاویر جمجمه ها و همین تصاویر رنگی کاین این رویدر و بقلیش هم همون درخت فرگشتی فت و فامیلای هست که این امودانهاشو خودم کشیدم در واقعی قسمتی از کار پالات رو هم مجموع خودم بختی بگیرم چون این قسمتی که میگه خیلی فنی میشد کسی معمولا توی گرافیس ها قبول نمیکنه. البته نقاش ها خیلی علاقه منده که دارند صحرها تردی کنم ولی هیچ نقاشی حاضر نیست کار اینجوری انجام بده بنابراین من, من ناچار بودم که خودم یاد بگیرم و این کارها رو انجام بدم. توی تصویر بعد هم باید به چند نمونه دیگه از این حالی می بیدید که همین هم مال همون کتاب فهنگنامهی دارند صحرها است بعض قسمت‌های کتاب هم هم, هم یه باکس هایی گذاشتم که این باکس ها موضوعشون از اون موضوع کلی فصل یک مقدار گستردگی داره مثلا در این باکس درباره اینکه ما از کجا می‌دونیم دایناسورها با چه سرعتی حرکت می‌کردن و چند سال زندگی می‌کردن و مثلا این سنگداره‌ای که تازه پیدا شده چند ساله بوده که مرده در این مورد من تو این باکس توضیح دادم به خاطر اینکه اغلب این نمونه‌ها برمیگردند همین خانواده تیرانوسور علاوه این من این باکس رو مدام گذاشتم داخل فصلی که به تیران و سرها هست یکی دیگه از کارهایی که ما برای نشون دادن اطلاعات دقیق علمی و مفهوم کردنش برای مخاطب انجام انجامیدیم استفاده از اینفوگرافیکه مثلا این اینفوگرافیکی که اینجا مشاهده میکنید این هم برای آقای حوانیه. یک مارکیچه هست، یک مارکیچه در واقع زمان هست که نه دور چرخیده و مرحله آخر رسیده به امروز هر دوری که چرخیده 500 میلیون سال رو نشون میده و درحقیقت من به کمک که این مارتیش نشون دادم که وقتی ما میگیم دوران ها میلیون سال پیش تا میلیون سال پیش روی زمین زندگی میکردن و تنوع پیدا میکردن و 66 میلیون سال پیش منقرض شدن در حالی که عمر زمین 4 تا 6 میلیارد ساله دقیقاً این صداها کجای تاریخ زمین هستند ببینید اون بالا سه تا قطره که به نفش و سبز رو من مشخص کردم. و تقریبا پیش از اینکه ما به دوره دینیزورها برسیم یک تاریخ بسیار بسیار طولانی چند میلیارد ساله زمین یک ای بوده که دست کم در ظاهر خالی از حیات به نظر نیشیده. تمام این حرفها رو براحتی با دیدن این تصویر و مطالعه یه مقدار اطلاعات جزی که که نارش هست شما میتونید به دست بیارید و به معروف، متوجه تمام اینها بشید در یک نگاه این اینفورگرافه دیگه ای که اینجا میبینید خیلی مهمونید این اینفورگرافه دیگه ای که میبینید نمونه از کاره هستش که من خودم برای این کتاب کردم و برای نشون بدن مفهوم رده بندی و رده و راسته و بونه و شاخه و و هم یادم، من توی دفتر داستانان نشسته بودم داشتم یه گزارش رو تنظیم می و در این حال از وقت آزارم هم استفاده میکردم برای اینکه این نفوگراف این ها رو تحاحی بکنم. و یکی از دوستانم در سر من گفتش که باید هو سیاه گذاشتهم. گفت فقط به این های رنگی بدی تصویر جذابیت هم پیدا میکنه. و یکی از مهمترین کلید های کار ما در ترویژ علمه اینکه علم رو تبدیل کنیم به یک کالا جذاب. که گرچه روزو من ازش ممکنه پول لرمه دارم پول بیرونشانانس ها رو معمولا موزه ها میدن یا مثل من برن سراغ های کارهای تربیجی علم روزنامه میداری توی اصلاحیل بعد کتاب بعدی من رو میتونید بعد از اینکه فرهنگامه در نوزه ها منتشر شد و سچه ها بر چاب شد و ناشر کتاب دید که این با وجودی که هزینه متوسطی گذاشته برای تور کتاب اما فروشش خیلی خوب بوده تصمیم گرفتیم یک کتاب جدیدی رو ما تولید بکنیم که تصاویرش در درصد اوریجینال باشن یعنی هیچ تصویری نباشه که کار نقاشای خارجی باشه بنابراین ما شروع کردیم تورید این کتاب رو واقعا حقیقتاً تصویر بعد از اینکه اینجا بود که ما تصمیم گرفتیم یک کامبریون جلوتر. یعنی اینکه برای کل صفحات کتاب امید اسکیچ سردی و گفتیم که نقاشی و گرافیک یا در واقع صفحه‌آلایی کتاب باید کاملا با هم هماهنگ باشه و این نقشه اسکیچ اولیه‌ای است که من تهیه کردم برای آقای که گفتم من میخوام مثلا یه استانبول سروش داشته باشیم یا آمالسورس داشته باشیم اینا میخوام می‌خوام تو صفحه اول باشن تا این مفهوم رو منتقل کنم آقای حوامی اینا برای من اینجوری چی و گفتش که اگر ما افتاری من همینو رو می‌کنم هم به کار کردم توی تصویر ولی می‌وید که بیلی عوض شده یه چیزی رو ما جایگزین کردیم برای اینکه گرافیکی کار بهبود پیدا بکنه و تصویر بعد صفحه نه در نهایی شده دو صفحه اولی کتاب رو میبینیم تصویر بعد یه یعنی در واقع اولی یکی دیگه از صفحات کتاب ماست که درباره اندازه ای توی این وصفت میخواستیم صحبت بکنیم این تراحی اولیشه و بیرم سخیه نهایی شده کتاب هست و اگر ایش تو اینا که اینها در واقع مراحل کار من به هموانی رو نشون میده که من ازش میخواستم اینها رو پله پله, پله پله به پله تراهی بکنه و این تصویر خود آقای هموانی توی سلید بعد اینها دیگه کاری هستش که من برای یک پروژه در تهران یه پارکی بریدان این سرها تراحیل شد از من خواستم که هم یه مقال اطلاعات علمیه که توی تارک وجود داشته تصدیح کنم بهشون کمک میکنم که به واقعیت نزدیک بشه چون خود مجسمهاشون به هیچ و قابل قبول نبود برای من گفتم ما این سری تابلو میخوایم برای ما تراحیل بکنیم و من دیگه با استفاده از است. همون چیزهایی که در این چند سال کار یاد گرفته بودم سر کردم که این تابلوها رو جاهایی از تنز استفاده کردم مثلا توی تصویر بعد فکر میکنم اگه دقت بکنید اون بالای تابلوی خطر هستش که من گفتم که به حیوانه دست نزنم. توی تصویر بعد می‌تونید ببینید و بعد هم بعدی اینا همون خطری هستش که من برای اونای مجسمات ها که الان البته هیچ بالاتن از این اتفاقات نخواهد افتاد اگه کسی دست بزنه ولی خب عنصر همه جا حتی توی کار علمی هم بچه‌ن وجود داشته باشه. توی تصویر بعد قسمتی از جزئیات علمی هستش که مربوط به هر کدوم از این مجسمه‌های دایناسورها هاست و سرعتش چقدر بود کجا زندگی می‌کرده چند میلیون سال پیش زندگی می‌کرده و من نمی‌دونم این قسمت هم هستش که در واقع های حیوانات امروزی است مثل این خرس قطبی و این چقدر منم شده بله من چند تصویر دیگه بیشتر نمونده که میخوام در اصابت کنم اگر اینا را تر... بله. و بعدی و بعدی خب کار بعدی که من میخوام شروع بکنم بعد اولو از فرصت میخوام استفاده بکنم و یک اه... شخصیتی رو میخوام شما مرفو کنم که من, من بتونم در آینده کارهای بیشتری باشند جانب. توی اسلاحیب بعد بعد از کارهایشون رو میتونید درویم پر با که, که, که من کتاب بدون باشون کار میکنم آقای امیر بهجتی من خواهش میکنم که همزمان که نخوشهشون رو میبینید رو بکنید چون شدیم من بوده چند تا از کاری هستش که من توی چند ماه باشون در واقعی من, من هیچ کاری نکردم یعنی دقیقه ایشون خودشون این توان دارن که من یا که همچین چیزی میخوام و با دانشی که داره میتونی کار انجام بدیم این نکته مهمی هستش که لزوما همه گروه پالو ها لازم نیستش که دانشمند باشن و تحصیلات آکادمیکی مطلوب داشته باشن اما بهترین هستش که کسی که وارد کار پالو آرت میشه یا کسی که وارد کار ترویج علم میشه و میخواد از یک رسانه هنری مثل نقاشی مثل سینما یا هر چیز دیگه ای برای طرح ریزی مثلا قابل باید یک اطلاعات پایه‌ای در داره اون موضوع داشته باشه این طور نیستش که همیشه افرادی باشن با تحصیلات که بخوام به اینها راهنمایی بدم برای اوقات باید, او باید کاملا دو کفه برابر باشه یعنی همونطوری که من بهونه یک دبیر آدمی که کارش توی دانشگاه و توی فضاهای علمی باید یه خط از مقالاته هنری داشته باشم کسانی هم که از هنر استفاده کنم برای تربیجی علم قطعاً باید نسبت به اون موضوع آقایی داشته بشن دست شما در نکنه خیلی ممنونم